این داستان چکمه از پوست گاو میش یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون یه سرباز نترس و بیباگ به هیچ چیز اهمیت نمیداد روزی سرباز از کارش برکنار شد او که کار دیگه بلد نبود نمیتونست پولی در بیاره برای همین سرگردون شده بود و سعی میکرد از مردمان خیر گدایی کنه اون ردای زخیم بر شونه داشت و پوتینهای دوران سربازیشو می پوشید که از جنس چرم گاو میش بود. روزی از روزا سرباز سابق با اون سر از مزرعه ها عبور میکرد که به جنگلی انبوه رسید. واقعا نمیدونست کجاست. ناگهان چشمش به مردی افتاد که لباس آراسته و سبز رنگ شکارچیانو به تن داشت. سرباز دست اونو در دست خودش گرفت و به شکارچی گفت میبینم که چکمه ها خوب و براقه. اگه تو هم مثل من مجبور بودی هر روز راهی دراز طی کنی کفشاد انقدر دووم نداشت. به چکمه های من نگاه کن از جنس چرم گاو میشه و سالای زیادی به من خدمت کرده ولی باید بیشتر از اینا دووم آورد. شکارچی به اون حرف گوش داد ولی کلامی به زبونش نیاورد. بعد از مدتی سرباز بلند شد و گفت من دیگه نمیتونم اینجا بمونم. گرستنگی منو به حرکت وامی داره. راستی برادر چکم باریک. تو رو به خدا بگو این جاده به کجا منتهی میشه. شکرچی جواب داد نمیدونم. من راه همو بین مه گم کردم. سرباز گفت پس تو هم مثل من راه گم کرده ای؟ بیا همراه یکدیگه بشیم و دوتایی راه خروج رو پیدا کنیم. شکارچی خندید و با اون همراه شد اونا با هم به راهشون ادامه دادن تا اینکه شب فرا رسید ناگهان سرباز با صدایی بلند گفت امشب دیگه نمیتونیم راه خروج از این جنگل رو پیدا کنیم در اون دور دست سوسوی یه چراغ رو میبینم. شاید اونجا چیزی برای خوردن به ما بدن وقتی به اون نقطه رسیدند کلبه ی سنگی دیدند در زدند و یه پیرزن در و رو رونا باز کرد سرباز به پیرزن گفت ما به دنبال جایی میگردیم که شب اونجا سر کنیم. قضای مختصریم بخوریم تا میدمون که مثل کیف پولمون خالیه پر بشه. پیرزن جواب داد به صلاح شما نیست که و اینجا بمونین. اینجا خونه دز. هر هرقدر زودتر اینجا رو ترک کنین عاقلانه تره. اگه اونو از راه برسن کارتون تمومه. سرباز گفت وقت از این بهتر که نمیشه چندین روز رنگ غذا رو ندیدیم برای من فرق نمیکنه که تو این خونه از بین برم یا وسط جنگل از گرسنگی بمیرم من به استقبال خطر میرم و وارد خونه میشم شکارچی دلش نمیخواست به دنبال سرباز بره ولی سرباز بازوی اونو گرفت و کشید و گفت بیا ما بدبختی ها رو با هم تقسیم میکنیم دل پیرزن برای اون دوتا تا سوخت و به اونها گفت که برن و پشت اجاق پنهان بشن. بعدم گفت که وقتی دزدا به خواب رفتند به اونا چیزی برای خوردن میده. اون دوتا تازه در مخفیگاه خودشون پنهان شده بودند که دوازده تا دزد وارد خونه شدن و دور میز نشستند و با لحنه خشن به پیرزن دستور دادن غذا رو بیاره. پیرزن ظرفی بزرگ پر از گوشت پخته رو روی میز گذاشت. و دزدا به طرف غذا حمله بر شدند. بوی اشتها برانگیز گوشت در فضای اتاق پیچیده شده بود و مشام سرباز به شدت تحریک شده بود. اون زیر گوش شکارچی گفت: دیگه نمیتونم گرسنگی رو تحمل کنم. میخوام برم کنار میز بشینم و چیزی بخورم. شکارچی بازوشو محکم گرفت و آهسته بهش گفت: با این کار جونتو به خطر میندازی. ناگهان سرباز با صدای بلند سرفه کرد. دوزا قاشق و چنگال و روی میز گذاشتن و با عجله بلند شدن و اون دوتا رو پشت اجاق پیدا کردند. اونا با لحن خشن بهشون گفتن: ای کسافتا، اون گوشه پنهان شده که چیکار کنین؟ برای جاسوسی اومدین؟ کمی صبر کنین به خدمتتون میرسیم. سرباز گفت: شما رو به خدا به ما رحم کنین. اول یه چیزی بدین بخوریم. بعد هر بلایی خواستین سر ما بیارین. دوستو از شنیدن این حرف که با جسارت عدا شده بود تعجب کردند. رئیس دزدا گفت خب به نظر میاد از اینکه گیر افتادین واهمه ای ندارین. باشه هرچی خواستین بخورین و بعد از غذا آماده مرگ باشین. سرباز در حالی که پشت میز می نشست به شکارچی گفت خب برادر چکم باریک، تو هم به اندازه من ای بشین پشت میز و غذا تو بخور چنین قضایی تو خونمونم پیدا نمیشه ولی شکارچی امتنا کرد و به غذا دست نزد دوستو با تعجب به سرباز نگاه میکردن و به همدیگه میگفتند میسه این این یکی تو باغ نیست سرباز غذا رو خورد و خورد بعد گفت چقدر خوشمزه بود حالا وقت اونه که جرعه نوشیدنی خوب به من بدین. سر دسته دزدا که در اون لحظه حال خوشی داشت به پیرزن دستور داد بهترین نوشیدنی توی انبار رو براش بیارن. وقتی پیرزن شیشه نوشیدنی رو آورد سرباز بطری و با صدای مهیبی باز کرد. بعدم به طرف شکارچی رفت و زیر گوشش گفت برادر عزیزم حواستو جمع کن. کاری میکنم که همه رو به تعجب واداره من این نوشیدنی رو با آرزوی سلامتی مینوشم بعد بطریو دور سر دزدا چرخوند و با سخنان قرا گفت همگی زنده باشین اما در حالی که دهانتون بازه و دست راستتون رو بالا نگه داشتین هنوز حرفای سرباز تمام نشده بود که دزدا مثل سنگ بی حرکت شدند دهان همشون باز بود و دست راستشون راستشونو بالا نگه داشته بودند. شکارجیی به سرباز گفت: حالا میفهمم تو میتونی رو سیاه کنی. اما دیگه بیا بریم پی کار و زندگیمون. سرباز گفت: نه برادر چکمه باری، حالا وقتش نیست ما ضربه محکمی به دشمن زدیم و وقت اونه که از قنایم استفاده کنیم. حالا بیا و هرچی دلت میخواد بخور و بنوش به این ترتیب اونا سه شبانه روز اونجا موندن پیرزنم هر سه روز آب و غذای اونا رو تهیه کرد در چهارمین این روز سرباز به شکارچی گفت حالا وقت اون رسیده که تلسمو بشکنیم ما میتونیم با راه میان که پیرزن نشونمون میده به نزدیکترین جاده برسیم وقتی به شهر رسیدند سرباز نزد دوستان قدیمی خودش رفت و به اونها خبر داد که مخفیگاه دزدها رو در جنگل کشف کرده و اگر بخوان میتونن راه و نشونشون بده. دوستان قدیمی سرباز موافقت خودشونو با این پیشنهاد اعلام کردند. سرباز هم شکارچی رو ترغیب کرد که به همراهشون بره و عکس عمل دزدها رو وقتی که دستگیر میشن ببینه. در مرحله اول سرباز به دوستای خودش گفت کلبه را محاصره کنند. بعد وارد کلبه شد. بطری نوشیدنی را دور سر دزدا گردوند. جرعه نوشید و با صدای بلند گفت همگی زنده باشین. مثل دفعه پیش همه دزدا مثل سنگ بی حرکت شدند. سربازا وارد کلبه شدند و دست و پای دوزده را با تناب بستند. بعدم انگار که گونی باشند اونا رو روی عرابه انداختند. سرباز به هم قطاران خودش دستور داد که اونا رو یه راست به زندان ببرند. در اون میون شکارچی پنهانی به یکی از سربازا پولی داد و اونو با پیغامی به شهر فرستاد. بقیه افراد آهسته به راهشون ادامه دادند. اما وقتی به شهر نزدیک شدند سرباز متوجه ازدهام و هیاهوی غیرعادی مردم شهر شد. مردم شاخه سبز در دست گرفته بودند و به نشانه شادمانی تکان میدادند سرباز کم کم پی برد که اونا محافظان مخصوص پادشاهن و به استقبال اومدند. اون موقع رو کرد به شکارچی و پرسید مگه چه اتفاقی افتاده شکارچی در جواب گفت خبر نداری پادشاه این سرزمین مدتی طولانی از دیار خودش دور بوده و امروز برمیگرده اینا به استقبال پادشاه خودشون اومدند. سرباز پرسید پس پادشاه کجاست؟ چرا نمیبینمش؟ شکارچی جواب داد پادشاه من هستم. من یکی از سربازها رو به شهر فرستادم و ورود خودم رو اعلام کردم. اون وقتی که داشت اون حرفا رو میزد دگمه تن پوش شکارش رو باز کرد و لباس فاخر سلطنتی خودشان نشون داد. سرباز ترس برش داشت. از ناراحتی روی خاک زانو زد و با التماس از پادشاه خواست که اونو به خاطر بد ببخشه. آخه اون با القابی عادی پادشاهو صدا زده بود. پادشاه دست اونو گرفت و گفت: تو سرباز بسیار شجاعی هستی و زندگی منو نجات دادی. تو از این پس دیگه رنگ فقر رو نخواهی دید و من از تو مراقبت میکنم. هر با خواس کردی دوباره گوشت بخوری مثل اون گوشتی که در جنگل خوردی به قصر من بیا تا با هم شام بخوریم. ولی یادت باشه هنگام خوردن نوشیدنی قبل از اینکه برای کسی آرزوی سلامتی کنی باید از من اجازه بگیری. کانال تلگرامی هزار افسان داستان‌های افسانه‌ای صوتی نشانی کانال تلگرامی t.me/mehrandoosti t.me/mehrandoosti نشانی وبلاگ ما mehrandoost s t i b l o g f a c o m mehran کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی